و بعض دیگر مثلا به این و بعض لا گفتن اصلا اسم فایلی که علی داره عمل نمیکنه به به طور ان دهو یعنی که داره به طور عمل نمیکنه چرا چون علی اسلام شو علی تعریف وقتی ال حالا مثلا زیدون از زارب و هنگرد رو آقایی که علف لام و علف لام تحریف میدونیم اینو چهارش مکنیم حالا چهار چه استفاد چه مازم اینو که همستده هنگرد رو زیدون از زارب و هنگرد یا علمورتقی مکارمان اینو که عرب میگه میگه ولی بله میگه میگه تو چطور ترکیب میکنیم میگه ترکیبش این نیست که مکارمان مفهور است. بلکه و این و الان ما بعده بود از رو جنبه من ان ما به ازمار یعنی معمول رو به ازمار بعدی کنوزید او وصف منعبنی چون مونیه اینو بگیره اینم بازیه تیکنه جنبا گفته ما بعدش یا بگو منصوب است به یک فیل مقدر یا منصوب است بکی به, به یک بورتادی ما کار ما اگر به معنی واضی باشه یه مقاله رو چی نسبت بده ارتقا ارتقای به کی مقدر اگر او محال او فعولان فی کسرتن انفائلن و میگه بزن فعال مثل انلام زرام محال مثل آه؟ مثل غفور فی و دیلون از جاها از فائل بکنه و از مازی خودش هم دست برداشته باشه یا اگر سه به حال باشه عمل کنه به جورود مذکورته این در جمعی الوستی عمل میکنه این اوزار مبارقه نزد همه وزی ها مثال نه این دو تا مثالی کرده اینجا مثال میزنه جبتشو آقا سیدابه میکایت کرده از عرب در کتاب بایش. میگه ایننا یکی از اجزاء خبر میاد چیکار میکنه اجزای بعد از فا فاصله میذنه مثل امریتی من فضا در مفعول فاصله اما به نعمت رب گیر به حدسی به نعمت کار مخاط مفعول اما زیدان فعال کار اول فاصله نشو میگم بین اما و فا. اینجا چی فاصله کرد؟ یعنی اما ازد پس من خیلی زیاد میبوشم همه مبتدار شرابون چیه قبلشه و زمین فایلشه که بردیگرد من این علیه اصلا مفهوله شرابون شرابون و این نبون لمنه ها منحار نهر یعنی شطور رو نهر کردن, کردن. منحار زیغه مبالغه شد یعنی او بسیار نهر کننده هست شطورانش رو بباهی کردن یعنی شطوران چار شطورانش رو اونها میخواده به شطوران بباهی یعنی چاق ها چاق های شطورانش رو خیلی بگی زیاد ضرور به نسل سی سوق ما ضرور قد بشید انتبه که تکه کرده به محتدای حالا ابن مالک وقتی و بقید یکونو نه اتر محظوظه فی از طریق طور عمل نزیب و سه کارو باید هم یعنی تو بسیار نسل سی بابای عالت استحانه نسل یعنی تیغه سف یعنی شمشیر تو بسیار زننده هستی با تیغه شمشیر سوق جمع ساق سوق ها سوق سمان ها سمان جمع سمینه یعنی چا ها یعنی شداران تو بسیار زننده هستی با تیغه شمشیر ساقه ها ساقشون میزن اینجور شطور غلش مرنده افتای پاشو پیم میزنن چطور میفته بعد چه کارش میکنن درش میکنن میگه تو خیلی زیاد شد شطورانت رو زهر میکنن سو یه که مردم هیچی ندارن بخورن <تصفح> از دست داده همزاد و رو تو خیلی زیاد میزنی ساقه تاهای شده را اضاحت موزاده فافای جزا این این میشن به کاف اسمش آقرون آقر چیزی که نگاه فایل نیست در هم اسم خبرش. یعنی کرد. جاش یعنی اولا و کره اولا جاش میگه اون جهواشون کربلای نه میگه اونها مثل اولوان این دو چشمه هستند میگه من مثل یک آبشخور زولای go cool. ثم زالو ثم ان دبوا في قومهم زادو فرقای انده هم انده هم هم اسمش تبدیل مستر بیمه زادو زادو فرقای هم قفر. خبر است تکه کرده به چی؟ تکه کرده به تکه کرده به اسم کسی خبر ده. انده هم قفر. یه اضافه کردن اینها بر فسائل شروعی که ایشان تفرور در بین خودشون در, در بین خودشون از I مصدر بسته شده از اسم فاعل و مفعول دائمه الاینده کسایی اگر پیش آقای کسایی که چون گفته چیه اسم فاعل دقیقه عمل خودش رو لحن در موضوعیت کل و مصققریت محواص زیرا موصوف شدن هم مثل چی؟ مثل مصققر شدن از خصوصیات اسم بزا بازیو عملش رو اگر موصوف باشه چه نصب نصبش بود لزومی با کنید منصب به ذل اعمال منصب یعنی چی نصب به فعل به ذل اعمال یعنی به اسم فاعلی که صاحب عمله بابای استانه یعنی به استانت اسم فاعلی که عمل میتونه بکنه نصب بده نصب بده چی رو تل بن تل بن من مفعول منصب تل من سواله بان امرن هر آنها با قدر وقت است و می دونیم جدش بدی فعل و فاعل از وجای مابر یعنی وقت عقوبات الناس به واسه باکو معتزلی است و, و, و حال که او وقتی بیت زلهوان ایست و فاعل ذات الرحمن یعنی طالب خبر او است و حال آنکه این تو حالیش بده نصبه ده میتونه اضافه بشه اما معاصبه اون دیگه مخبول دوکم یا مخواهیر دیگه مثل زر مخبول در لفت نمیدونم چی میشه؟ و نصبه معاصبه ها مخبضی لانگام تقریهته چون که تضاییه از این خودش متنقیه لنصب مخبول مخبضی مخبضی نناکه که کرده و نصف. و لام با اگر شما میبینید لام چیه؟ تقریه لام لامه تقریه مخبول مخبزی نصف اضافه شده به ما سباه و متعلق به یه استقرده سلهیه بخفزی اون کسره زاد که شما میبینید بخفز باید بگید کسره زاد رو چگاه کرده؟ کسره داده باست خواهد که اشباب بشه خواهدیه درست بشه با؟ ou oh, que é o جردش بده جردش بده به چی؟ بده اضافه بده. بده به اضافه و را سن ثم و آن انت کرده <تصفيق> یا قرآن داریم امنی جا و عرصه حالا کرده به امان مفهول سانی متعلق به به امان مفهول یعنی امنی جا و من و انت مؤلم مؤلم atlas جای کاسه الان اضافه شده اینجا علا علا. اونجا اضافه بشه به, چی؟ به خالد چی گفتیم خالده اضافه, اضافه اضافه اینجا اضافه کرده انت حالا بعد خرعج به که باثی غیری اشتفت اونی که مشتق شده از مستر در حالی که موازنه در گزاره نام در حالی که جزی که محمود ماردوست.